به نام نام خدای یگانی مهربان افسانه‌ها و قصه ها یا میانه بیتاریخ و بی‌زمان عشق و علاقه به قصه گویی و افسانه پردازی و شنیدن قصه و افسانه در تمام تاریخ تمدن با آدمی همراه بوده افسانه‌ها و قصه ها براحتی با هر محیط اجتماعی و محلی منطبق میشن و از این رو در عین کهنگی تازه و امروزی هن. در برنامه هزار افسان افسانه ای رو از کشور پهناور ما ایران عزیز براتون نقل میکنن به نام راه و بیراه برگرفته از کتاب افسانه های کهن ایرانی گردآوری فضل الله صبحی. در روزگاران بسیار قدیم، مردی زندگی میکرد به نام راه که به جوانمردی و درستی در بین مردم شهر معروف بود. روزی راه هوای سفر به سرش زد فوراً وسایل سفرش را آماده کرد تا چند سباهی جهانگردی کنه. راه یه اسب راهوار خرید و هر چی لازم داشت توی خرجین گذاشت و به ترک اسب است، و یا حق گفت و از دروازی شهر بیرون رفت راه هنوز مسافت زیادی نرفته بود که دید یه سوار داره بهش نزدیک میشه بعد از سلام و احوال پرسی معلوم شد که اونم مثل راه مسافره راه خوشحال شد که یه همسفر پیدا کرده و دیگه دوری و درازی راه اونو خسته نمیکنه. سوار از راه پرسید هم همسفر اسم چیه؟ راه سینه صاف کرد و گفت راه اسم من راهه بعد مکسی کرد و پرسید اسم تو چیه؟ مرد جواب داد بیرا راه گفت بیرا؟ بیرا که اسمیست بیرا شونه بالا انداخت و گفت اه چی کار میشه که پدر و مادرم این اسم رو رو من گذاشتن و مردم هم به همین اسم منو صدا میزنند راه تعجب کرد اما چیزی نگفت و همینطور رفتند و رفتند و رفتند, و رفتند. راه و بیراه همینطور که میرفتند رسیدن به درخت بلندی که در کنارش چشمه ای قرار داشت راه گفت آخه اینجا جای باصفایی. بهتر پیاده بشیم و نهارمونو همینجا بخوریم ها چطوره بیراه گفت خوبه جای باسفاییه و بعد پیاده شدند بیراه به بی راه نزدیک شد و گفت حالا که با هم هستیم و شریک و رفیق راه همیم، بهتر اول تو سفرت رو واکنی هرچی داری با هم بخوریم هر وقت مال تو تموم شد اون وقت نوبت منه باشه راه که خوشقل بود بیدرنگ قبول کرد و با کمال صفا سفره نون و آزوغش رو گذاشت وسط و با هم شروع به خوردن کردند. راه و بیرا بعد از خوردن نهار و کمی استراحت دوباره به راه رفتن و رفتن و بالاخره خسته و گرسنه از حرکت ایستادن حالا دیگه نوبت بیراه بود که سفره نون و آزوقش رو با راه تقسیم کنه ولی اون بدون اعتنا به همسفرش راه از اسبش پیاده شد و بدون تعارف رفت یک کنار و کرد به قضا خوردن راه که سخت گرسنه بود به همسفرش نزدیک شده گفت رفیق قرار ما این نبود بیراه بتوندی گفت من یعرف حرفا سرم نمیشه من آدم آقلی هم حساب کردم اگه بناباشه تو رو شریک نون و آزوغم کنم اون بقیق راه توی حرفش پرید و گفت ولی من تو رو شریک نون و آزوغم کردم نکردم بیراه چیزی نگفت و همینطور به غذا خوردنش ادامه داد راه که از این رفتار همسفرش بیرا دلتنگ و ناراحت شده بود از اون خداحافظی کرد و به راه خودش ادامه وقتی از هم سفرش بیراه جدا شد راهش رو کچ کرد و به یه طرف دیگر حرکت کرد رفت و رفت تا اینکه نزدیکیای غروب به یه آسیاب رسید اسبش رو بیرون به درختی بست و با احتیاط وارد آسیاب شد تا شب رو راحت بخوابه راه این طرف و اون طرف آسیاب رو خوب برانداز کرد دید گوشه آسیاب یه پستوی که جلوش یه سنگ گذاشته شده راه آروم و با احتیاط از گوشه سنگ رفت توی پستو خورجین رو گذاشت زیر سرش و به خواب رفت نصف های شب راه یه دفعه از خواب پرید دید صداهای نفس و خورناس میاد پا شد دگاه کرد دید ای دل غافل یه شیر و یه پلنگ و یه گرگ و یه روباه اومدن توی آسیاب راه اولش خیلی ترسید. ولی بعد خوشحال شده گفت چه کار خوبی کردم وسط آسیا نخوابیدم و اومدم تو این پستو چند دقیقه ای که گذشت شیر گفت پروفاغ بوی آدمیزاد به مشامم میاد پلنگ زد زده گفت چی میگی آدمیزاد جور داره. پاشو اینجا بذاره ها؟ گرگ در ادامه حرف پلنگ گفت اینجور جاها دل و شجاعت میخواد و روبا هم گفت آدمی زاد فکر و عقل داره جایی نمیخوابه که آب زیر پاش بره مطمئن باشین اینجا پیداش نمیشه بعد همشون شروع کردن به خندیدن <تصفيق> پلنگ و شیر و گرگ و روبا همونطور که دور هم نشسته بودن برای اینکه سرگرم بشن شروع کردن به فاش کردن اسراری که می درستن. پلنگ پیش دستی کرد و گفت همورم دوستان من هیچ میدونستین روی پشت بوم این آسیاب یه جفت موش لونه داره که توی لونه اونها پر از اشرفی و سکه های موش ها هوا که تاریک میشه از توی لونه اشرفی و سکه طلا رو میارن بیهون و روی زمین پن می و بعد با اونا بازین کنن و دمدمای صبح سکه ها و اشتوی ها رو دو مرتبه میبرند توی لونشون نشون هم گفت خوب حالا اسرار منو اشتوی دختر پادشاه این سرزمین دیوونه شده و هیچ حکیمی نمیتونه اونو مالج کنه پادشاه قرار گذاشته هر حکیمی دخترشو درمون کنه نصف مال و دارای خودشو به اون ببخشه تازه دخترشو هم به در درمیاره ولی ولی ولی کسی نمیدونه درمون درد دختر پادشاه شربتی از جرده بزرگترین و زیبا ترین گل باغیه که در همین نزدیکی هاست شیر از گور پرسید دوست عزیز حتما همون باغی رو میگی که در نیم فرسخی اینجا قرار داره عجب باغه هشنگ و زیبای گور گفت بله بله بله داروی درد دختر پادشاه توی اون باقه باقه این باغ خیلی به گلاش علاقه داره و شب و روز در حال رسیدگی به اون گلهاست. حرف گر که تموم شد روباه به حرف اومده گفت دوستان من در یه فرسخی این آسیاب یه خرابهیه که قصر پادشاهان قدیمه و الان زیر این خرابه ها یه گنج با ارزشی که نگو و نپوس. پلنگ با تجب پرسید اه چه گنجی روباخ گفت هفت خوم تلا و هفت خم جواهر خلاصه ایگونا هر کدوم اسراری رو که می برای هم بازگو کردن و بعد از ساعتی از آسیاب خارج شدن بعد از رفتن حیونا راه از پشت سنگ بغل آسیا بیرون اومد و یه راست رفت روی پشت بوند. دید؟ بله. دو تا موش اشرفی ها و های طلا رو روی زمین پنگ کردن و مشغول بازی با اونا هستند راه سنگی برداشت و زد به پای یکی از موش موش دیگه از ترس فورا رفت تو لونه و موش زخمی هم با هر زحمتی بود خودش رسوند به توی لونه. راه هم با خوشحالی تموم اشرفیه ها و سکه های طلا رو جمع کرد و توی خورجین شیخ رو صبح زود از آسیاب خارج شد و به طرف باغ زیبا به راه افتاد. راه به باغ زیبا که نزدیک شد دید بله عجب باغ زیبا و پرگلیه. مرد باغبون در حال رسیدگی به گلها بود و در میون باغ گلی زیبا مثل یک نگین میدرخشید. را جلوتر رفت و به مرد باغمون نزدیک شد و بعد از سلام و احوالپرسی پرسی به مرد باغمون گفت ام بزرگترین و زیباترین گل این باغ رو می باغبون نگاهی به بزرگترین و زیباترین گل باغش انداخت و به تندی جواب داد نه این گل فروشی نیست این گل نگین این باغه من به پاش خیلی زحمت کشیدم نه نه نه فروشی نیست راه گفت میدونم اما پدرجان من پول خوبی بابت این قلبت میدم باقبون اسم پول رو کشنید شنید کمی توی تصمیمش تردید کرد و گفت شاید شاید بفروشم خب حالا چند میخری راه گفت هرچی تو بخوای مثلا مثلا پنجاه اشرفی خوبه چطوره باقبون با تعجب پرسید اوه پنجاه اشرفی و بعد به تندی ادامه داد و گفت باشه باشه باشه قبوله باشه قبوله باقیمون اشرفی ها رو گرفت و زیباترین و بزرگترین گل رو چید و به دست راه داد راه هم خوشحال به طرف دروازه شهر به راه افتاد راه وقتی وارد شهر شد دید همه مردم ناراحت و افسردن راه از مردی پرسید آقا چرا مردم اینقدر ناراحت و افزردن؟ مرد با ناراحتی گفت آخ چی بگم الان چند روز دختر پادشاه دیونه شده و هر کاری میکنن خوب نمیشه برای همین پادشاهو کرده تمام مردم و رو ناراحت باشه راه به مرد گفت خب چرا برای دختر پادشاه حکیمی، طبیبی دوایی نمیارن؟ مرد گفت کجای کاری؟ تا به حال دهها حکیم اومدن بالای سر دختر پادشاه و چون نتونستن اونو معالج کنن به دستور پادشاه به دارا ویخته شدن؟ راه گفت اچه ولی من میخوام برم دختر پادشاه رو معالج کنم مرد دی گفت نه nah! این کارو نکن نکن. مگس چون خودت سیر شدی اما راه نشونی غصب پادشاه رو از مرد گرفت و برای مالیجۀ دختر پادشاه به راه افتاد راه به قصر پادشاه رسید و به نگهبانان قصر گفت که به پادشاه خبر بدن حکیمی برای معالجه دخترش اجازه ورود میخواد پادشاه تصول داد که راه به داخل قصر هدایت بشه راه نزد پادشاه که رسید اول تعظیم کرد و بعد گفت ای پادشاه ارجمند من برای معالجه دخترتون حاضر و آمادم پادشاه نگاهی به راه انداخت و گفت اگر دخترم رو معالجه کنی نصف مال دارای من مال تو و تا حاضرم دخترم رو به عقد تو در بیارم اما پادشاه بعد مکس کرد به راه که آروم در مقابلش ایستاده بود نگاهی انداخت و ادامه داد اما, اما اما اما اگر نتونی دخترم رو معالجه کنیم جونت مال من دستور میدم رو بزنن راه ادای احترام کرد و گفت هرچه حکم قیلهٔ عالم باشه و بعد گفت که برای انجام دادن کاری به بیرون از قصر میره و برمیگرده و در این فاصله برای دختر یک کاسه شیر آماده کنن راه از قصر پادشاه که بیرون اومد یه راست رفت سراغ بزرگترین و زیباترین گل و فورا گرده گل رو برداشت و به سرعت به قصر پادشاه برگشت پادشاه به همراه دخترش در قصر منتظر راه بودن راه به محض ورودش به قصر به پادشاه گفت قبله عالم به سلامت باد این گرده گل رو بگیرین و با شیر مخلوط کنید و بعد اونو به شاهزاده خانون بدید تا میل کنه پادشاه گفت خب بچی راه گفت و بعد منتظر نتیجه معجزه آساگ اون باشین پادشاه هم فورا گرده گل رو با شیر مخلوط کرد و به شاهزاده خانم داد تا بخوره طولی نکشید که شاهزاده خانم با نوشیدن شربت گرده گل حالش رو به بهبودی رفت و بالاخره خوب خوب خوب شد و پادشاه همونطور که قول داده بود نصف دارایی و مالش رو به راه بخشید و دخترش رو هم به عقد اون درآورد آورد و شهر رو چراغونی کردند و مردم به شادی و جشن و سرور پرداختند. روز بعد به سراغ خرابه هایی که روباه کفته بود اومد و کندوکاف کرد و گنج ها رو از زیر خاک بیرون و همونجا روی خرابه ها یه با شکوه ساخت چند روزی گذشت تا اینکه یه روزی راه به همراه چند نوکر و غلام مشغول گردش بود که دید یه سواری از دور داره به طرفش میاد سوار جلوتر که اومد نگاهی به راه انداخت راه هم به سوار خیره شد و یه دفعه هر دو هم دیگر رو شناختن بله راه رفیقش بی راه رو شناخت بی با تعجب به راه نگاهی کرد و دید رفیقش راه وضعیت خوبی پیدا کرده لباس زربفت پوشیده چکمه های ساغری پای اسبش کرده و نوکرها و دور و برش حلقه زدند. و بالاخره هم طاقت نهی و گفت رفیق این دم و دستکار از کجا پیدا کردی؟ راه هم تمام ماجرا رو برای بیراه تعریف کرد بیراه که حسادت تمام وجودش رو پر کرده بود بلافاصله فاصله از راه جدا شد و به طرف آسیاب رفت تا اونم به نواری برسه بیراه وقتی وارد آسیاب شد یک راس رفت پشت همون سنگ توی پستو و پنهون شد. نصفه ها یه شب دید سر کله شیر و پلنگ و با پیدا شد. شیر گفت رفقا بازم ببوی آدم ایزاد میاد. حالا هر کدوم خبر تازه و رازی داره بگه. پلنگ گفت رفقا من به سراغ مونش ها رفتم اونا روی پشت بوم نبودن توی لونشون پریشون و ناراحت نشسته بودن اونا دیگه اشرفی نداشتن به گمین هم یکی اومده و اشرافی های اونا رو برداشته و رفته شیر هم با نارتی گفت واقعا چیز عجیبیه امروز از کنار باغ که میگذاشتم زیباترین و بزرگترین گل باغ رو ندیدم خوچمن یک کسی اونو چیده روبا هم با تأسف گفت یادتون هست؟ یادتون هست؟ گفتم توی اون خراب گنج وجوده همه یه صدا گفتن بله بله بله بله روبا با نارتی گفت آه، امروز رفتم دینم روی اون خرابه یه امارت باشکو ساختم شیر گفت معلوم میشه آدمی زادی اینجا بوده و حرفهای ما رو شنیده الانم بوید آدمی زاد میاد بعد رو کرد به روباه و گفت روبا جان تا از همه چابکتری برو این جنس شریف رو پیدا کن و بیار اینجا روبا هم پا شد و خوب نگاه کرد و بالاخره بیراه رو که توی پستو پنهون شده بود پیدا کرد و به نزد دوستانش بود. بیراه از ترس زبونش پند اومده بود پلنگ گفت رفقا میدینین که من علم شناسی دارم بذارید ببینم چجور آدمیه بعد به بیراه نزدیک شد بیراه داشت از ترس قبض روح میشد پلنگ نگاهی به صورت بیراه انداخت و گفت نه جنس گریبیه حتی اوه، اوه، یه مثال خیر و برکت توی وجودش نیست و بعد هم همه با هم به بیراه حمله فر شدن و اونو t t t t, t <laughs> افثانه ایرانی راه و بیراه رو براتون نقل کردم افسانه ها رو میشه یادمانی از زندگی انسان ها دونست افسانه ها از زندگی مردم مایه گرفتن و ریشه در اون دارن و نمادی از رنج ها شادی ها باورها و تجربه های مردم به شمار میرن افسانه ها میتونن به شکوفایی قدرت تخیل ما و در نتیجه خلاقیت ما کمک کنن و ماگی لذت و سرگرمی و کسب تجربه های غنی برای ما باشه هزار افسان کار مشترکی است از نویسنده و سردبیر زینت صالحپور ویراستار بهار گیویان اجرا مهران دوستی صدابردار بردار ستاره همیدی جای کننده زهرا عبدالله زاده تا افسانه دیگر بدرودی